فصل دوم سه شب بعد میجر پیر در آرامش کامل و در عالم خواب ما و جنازش پایین باغ میوه به خاک سپرده شد این واقع در اوایل ماه مارس اتفاق افتاد تا سه ماه بعد فعالیتهای پنهانی زیادی در جریان بود نطق میجر به حیوانات زیرکتر مزرعه دید تازهی نسبت به زندگی داده بود آنها نمی‌دانستند انقلابی که میجر پیش‌بینی کرده بود، کی جامعه عمل به خود خواهد بشید و هیچ دلیلی نداشتند که تصور کنند این انقلاب در خلال زندگی خودشان صورت خواهد گرفت. اما کاملا آگاه بودند که موظفند خود را برای آن آماده سازند. کار تعلیم و مدیریت به عهده خوک‌ها که هوشیارتر از سایر حیوانات شناخته شده بودند، افتاد. و سلامد آنان دو خوک نره جوان بودند، با اسامی اسنوبال و نابلان. قای جونز این دو را به منظور فروش در داده بود. ناپل هيكلی درویش داشت و قیافه‌اش تا حدی خشن و سبب بود. بارکشری بود، در سخنوری دستی نداشت ولی معروف بود که حرفش را به کرسی می‌نشاند. سنوبال خوکی پر تری بود، بلیغ‌تر و مبتکرتر بود ولی استقامت رأی او را نداشت. های مزرع خوک های پرواری بودند و معروف‌ترین آنها خوکی بود کوچک و چاق به اسم که گونه‌های برآمده و چشمانی براق بر داشت. و چابک بود و صدای زیلی داشت ناتقی زبردست بود و وقتی درباره باره مسئله مشکلی بحث میکرد طوری از سویی به سویی میجست دومش را با سرعت کام میداد که طرف را مجاب میکرد در باره اش گفتند که قادر از سیاه را سفید دل تعلیمات میجر را به صورت یک دستگاه فکری بحث داده بودم و بر آن نام حیوانگری گذاشته بودند چند شد در هفته پس از خوابیدن جونز در طبیر جلسات سری داشتند و اصول حیوانگری را برای سایر حیوانات شهر میدادند در بادی امر با بلاحت و بی علاقهگی مواجه بودند و از از وظیفه وفاداری نسبت به جونز که او را ارباب خطا میکردند میزدند. و یا مطالبی پیش پا افتاده عنوان میکردند از قبیله جونز به ما علوفه میدهد و اگر نباشد همه از گرسنگی دلق میشویم و برخی دیگر سوالاتی مطرح میکردن از قبیله به ما چه که پس از مرگ ما چه واقع خواهد شد؟ و یا اگر انقلاب به هر حال واقع شدنی سلاش کردن یا نکردن ما چه تأثیری در نفس امر خواهد داشت خوکا برای آنکه به آنها بفهمانند این گفته ها مخالف روح حیوانگری است مشکلات فراوانی داشتند احمقان ترین سوالات را مالی مادیان سفید طرح میکرد اولین سوال او اسنبال این بود آیا پس از انقلاب باز هم قند وجود دارد سنبال خیلی محکم گفت نه در این مزرعه وسیله ساختانش رو نداریم به علاوه حاجتی هم به داشتن آن نیست جو و یونجه هر بخواهید خواهد بود مالی پرسید آیا من در بستن روبان بیانم باز مجاز خواهم بود؟ سنبال جواب داد رفیق این روبانی که تو تا این پایبان علاقمندی نشان است. قبول نداری که ازش آزادی بیش از روبان است؟ مالی قبول ولی پیدا بود که متقاعد نشده است وضع خوک برای خونسا کردن اثر دروغ های مزز زاغ اهلی از این هم مشکلتر بود مزز که در از پرورده مخصوص آقای جاز بود هم جاسوس بود و هم خبرچین در ضمن حراف رافظه هم بود داییه داشت که از وجود سرزمین عجیبی آگاه است. به نام شیر و اصل که همه حیوانات پس از مرگ به آنجا می روند مزز می گفت این سرزمین در آسمان کمی بالاتر از عب هاست. سر سرزمین شیر و اصل هر هفت روز هفته یک شنبه است در آنجا تمام سال در موجود است و بعد درخت ها نبات می روید. حیوانات از مدرز نفرت داشتند چون سخنچینی می کرد و کار نمی کرد ولی بعض از آنها به سرزمین شیر و اصل اعتقاد پیدا کرده بودند و برای اینکه خوکها آنها را متقاید کنند که چنین محلی وجود ندارد ناگزیر از بحث و استدلال بودند سرسپردهترین خوک خوکها باکسر و کلوور دو اسب عرابه بودند برای این دو حل مسائل مشکل بود اما وقتی خوکان را به عنوان استاد پذیرفتند تمام تعلیمات را جذب میکردند و همه را با لحنی ساده به دیگران میرساندند هیچگاه از حضور در جلسات سری قفلت نمیکردند و سرود حیوانات انگلیس را که جلسات همیشه با خواندن آن ختم میشد رهبری میکردند بر حسب اتفاق انقلاب خیلی زودتر و بسیار ساده‌تر از آن انتظار میرفت به ثمر رسید. درست است که آقای جونز ارباب بیمرتی بود ولی در سالهای پیش زاره کارامدی به شمار میآد ولی اخیرا به روز بدی افتاده بود بعد از آنکه در یک دعوای غذایی محکوم شد و خسارت مالی به او وارد آمد دلسرد شده بود و به حد افراد مشروب می خود. گاهی سراسر روز را در آشپزخانه روی سندلی چوبه دستداری میلمید و روزنامه میخواند شراب میخورد و گاه گاه تکه‌های نان را در آبجو خیس خیست میگرد و به مزز میخورند کارگرانش نادرست و تنبل بودند مزرعه پر از علف حرزه بود خانه حاجت به تعمیر داشت در حفظ پرچین ها قفلت میشد و حیوانات گرسنه بودند ماه جوان رسید و یونجه تقریبا آماده ی بود در شب نیمه تابستان که مصادف با شنبه بود، آقای جونز به ولیندر رفت و آنجا در میخانه شیر سرخ چنان مست شد که تا ظهر یکم باز نگشت. کارگرها و بزدگاوها را دوشیدند و بعد بیان که فکر دادن خوراک به حیمانات باشند، دنبال شکار خرگوش رفتند. آقای جونز پس از مراجعه بلا فاصله روی نیمکت اتاق پذیرایی با یک نسخه از روزنامه اخبار جهان روی صورتش خوابش برد. بنابراین تا شب حیوانات بیولوف ماندند، بلاخره تا تاق شد یکی از گابها در انبار آزوخه با شاخش شکست و حیوانات جملگی مشغول خوردن شدند درست در همین موقع جون بیدار شد و یک لحظه بعد او و چهار کارگرش شلاق به دست ورده انبار شدند و شلاق‌ها را به حرکت در این دیگر فوق طاقت حیوانات نبود با اینکه از قبل نقشه‌ی نکشیده بودند همه با هم بر سر دشمنان ظالم ریختند جونز و کسانش ناگهان از اطراف در معرض شاخ و لگد قرار گرفتند انان اختیار دستشان خارج بود هرگز چنین دکتری از حیوانات ندیده بودند و این قیام ناگهانی از که هر مرد هر چه خواسته بودند به آنها کرده بودند چنان ترساندشان که قوه فکر کردن از آنها سبت شد. پس از یکی دو لحظه از دفاع منصرف شدند و فرار را ب قرار ترجیح دادند در بعد هر پنج نفر از آنها در جاده عراب رو که به جاده اصلی منتهی می شد با سرعت تمام میدویدند و حیمانات مزفرانه آنها را دنبال می کردن. خانم خاان جونز هم که موفققع را از پنجره اتاق دید با عجل مقداری اساس در مفرش ریخت و دزدکی از راه دیگر خارج شد. مزز هم از شاخه درختی که بر آن بود پرید و قارقاركنان کنان بالزنان به دنبال او رفت در خلال این حوال حیوانات جونز و کسانش را به جادی اصلی رانند و دروازه پنج کلونی را با سر وصدا پشت سر آنان کلون کردند و بدین طریق و تقریبا بیانگ خود بدانند انقلاب برپا شد و با موفقیت به پایان رسید جونز تبعید و مزعی مانر از آن آنان شد در دقایق اول حیوانات سعادتی را که نصیبشان شده بود باور کردند اولین اقدامشان این بود که دست جمعی به منظور تحصیل اطمینان از اینکه بشری در جایی مخفی نیست چهارنعل دورادور مزرعه را تاختند و سپس به ساختمان مزرعه آمدند تا آخرین اثرات سلطه منفور جونز را پاک سازند در یراقخانه را که در انتهای طویل بود شکستند و دهنهها ها بینی زنجیرهای سگ و چاغوهای بی جونز جنز به وصلی آن خوکها و بره ها را اخته می کرد همه در چاه سندگون شد افسارها، دهنهها، دهنه ها و طبراهای موهن به میان آتشی که از زباله در حیات افروت شده بود ریخته شد شلاقها هم به همچنین حیوانات وقتی شلاق ها را ور وردیدند همه از شادی به جست و خیز درآمدند. سنبال ربانه هایی را هم که با آن دو و یال را رو در روزهای بازار تزیین میکردند در آتش انداخت گفت روبان به منزله پوشاک است که علامت و نشانی انسان نیست حیوانات بایستی بررهنه باشند باکسر با شنیدن این بیان کلاه حصیریش را که در تابستان گوشهایش را از مگس حفظ میکرد آورد و بازقایر چیزیزها در آتش انداخت. در اندک زمانی حیوانات هر چیزی که خاطره جونز را به یاد می میآورد از بین بردند بعد آن آنها را به طویله برگرداند و به هر یک جیره دو برابر معمول و به هر سگ دو بیسکویت داد سپس حیوانات سرود حیوانات انگلیس را هفت بار از سر تا ته پیاپی خواندند و پس از آن خود را برای شب آماده ساختند و خوابیدند خوابی که پیش از آن هرگز در خواب هم ندیده بودند اما همگی طبق معمول سحر برخاستند و ناگهان حوادث پرشکوه شب پیشین یادشان آمد دست جمعی رو به چراگاه دویدند کمی پایین‌تر از چراگاه تپه پوشیده‌ای بود که تقریباً بر تمام مزرعه مشرف بود حیوانات بالای آن شدافتند و از آنجا در روشنایی صبحگاهی به اطراف خیره شدند همه مال آنها بود هر میدیدند می‌دیدند مال آنها بود مست و سرشار از این فکر به جست و خیز افتادند در هوا شلنگ برداشتند میان ها قلت زدند و در علفهای شیرین تابستانی چریدند کلوخا را مال کردند و بوی تند آن را بالا کشیدند سبس به منظور تفتیش گشتی به اطراف مزرعه زدند و با سکوتی آمیخته با تحسین زمین زراعتی ینجزار باغ میوه به و جنگل کوچک را ممیزی کردند وی این چیزها را قبلا ندیده بودند و حتی حالا هم مشکل باور میکردند که همه از آن خودشان است بعد همگی به سوی ساختمان مزرعه ریسه شدند و پشت در ساکت آرام ایستادند. این هم آنها بود ولی میترسیدند داخل شوند. ولی پس از رهزه سنوبال و ناپلون در را به زور شانه خود باز کرد. حیوانات یکی یکی پشت سر هم با منتهای های و احتیاط تا مبادا چیزی را بر هم بزنند قدم به داخل گذاشتند نکه پا از اتاقی به اتاق دیگر می رفتند و می ترسیدند بلندتر از نجوا حرف بزنند و اشیاء لکس باونده کردنی به تخت خواب ها های پر آینه ها نیمکت کار بروکسل و عکس ملکی ویکتوریا که بالای سر بخاری اتاق پذیرایی بود با وحشت خیره شده بیدند. تازه به پایین پله برگشته بودند که متوجه غیبت مالی شدند برگشتند دیدن دیدند که در اتاق خواب است ربان آبیرنگی از میز و خانم جونز برداشته و آن را حمایل شانه ساخته بود و به طرز ابلهانهای جلوی آینه خود می کرد بقیه او را سخت ملامت کردند و خارج شدند چند پاته‌ی نمکسود خوب که در آشپزخانه آویزان بود برای دف به خارج آورده شد و بشگه آبی که در آب آبدارخانه بود با لگد باکسر شکسته شد. غیر از این به چیز دیگری دست نزدند. به اتفاق آرا تصمیم بر این گرفته شد که خانه به عنوان موزه محفوظ بماند. همیگی توافق کردند که هیچ حیوانی نباید هرگز در آنجا سکونت گزیند. حیوانات ناشتایشان را خوردند و بعد سنوبال و ناپل آنها را مجددا یک جا جمع کردند. سنابال گفت: وفاقا. ساعت 6:30 است و روزی طولانی در پیش داریم. امروز به کار دروی یونجه میپردازیم، ولی موضوع دیگری هست که باید حتماً ترتیب آن داده شود. خوکا در این موقع فاش ساختند که ظرف سه ماه گذشته از روی کتاب مندرس بچه های جونز که در زبالدانی بود، خواندانه نوشتن آن ناپلان ناپلوند استوج داد قوطی‌های رنگ سیاه و سفید را بیاورند و حیوانات را به طرف دروازه پنج کلونی که مشرف به جاده اصلی بود برد. سپس سنوبال چون از همه بهتر می‌نوشت، قلم موی را بین دو بند یکی از پاچه‌هایش گرفت و کلمات مزعه منر را از بالای کرون پاک کرد و جای آن را با رنگ نوشت قلعه حیوانات تا از این تاریخ همیشه اسم این محل باشد. بعد جملگی به ساختمان مزرعه بازگشتند و در آنجا سنوبال و ناپلئون به دنبال نردبانی فرستادند که به دیوار انتهای تابلته گیر داده شد. بعد توضیح دادند که در نتیجه تحصیل سه ماه موفق شدند که اصول حیوانگدی را تحت هفت فرمان خلاصه کنند. این هفت فرمان را بد دیوار خواهند نوشت قانون لایتغیاری خواهد بود که حیوانات قلعه ملزمند از این پس و برای همیشه از آن پیروی کنند. سنوال با کمی اشکال بالا رفت و شروع به کار کرد در حالی که سکویلر چند پل پایین تر رنگ را در دست گرفته بود فرامین هفتگانه روی دیوار قیرندود با حروف سهید دروش از فاصله سیمتری خانده می شد نوشته شد به این ترتیب هفت فرمان یک هرچه دو پاس دشمن است دو هرچه چهار پاس یا بال دارد دوست است سه هیچ حیوانی لباس نمی چهار. هیچ حیوانی بر تخت نمی خوابد پنج هیچ حیوانی الکل نوشد. شش هیچ حیوانی حیوانکشی نمی کند. هفت همه حیوانات برابرند خیلی پاکیزه نوشته شد و جز اینکه دوست دوست نوشته شده بود و یکی از وها وارونه بود امرای بقیه درست بود سنابال همه را برای استفاده سایرین با صدای بلند قرائت کرد همه حیوانات با حرکت سر موافقت کامل خود را ابراز داشتند و زیرکها فوراً مشغول از کردن افرامی شدند. سربال قلمو را پرت کرد و فریاد کشید و حالا رفقا به پیش به سوی ینجزار بیایید عزم خود را جزم کنیم تا محصول ینجزار را در مدتی کوتاهتر از جونز و آدمهایش برداشت کنیم. اما در این موقع سه مادگاو که مدتی بود به نظر بی‌تاپ نیامدند با سوی بلند شروع به ما کشیدن کردند. بیست و ساعت بود که دوشیده نشده بودند و پستانهایشان رک کرده بود خوکها پس از کمی فکر به دنبال سطر پرستادن و نسبتا موفقانه گاوها را دوشیدند و دیری نکشید که پنج از شیر کف کرده خامدار پر شد و بسیاری از حیوانات با علاقه فراوان به آن چشم نوختند یکی می میگفت این همه شیر رو چه باید کرد؟ یکی از مرغها گفت جون گاهی مقداری از آن را آ اول اون خود را جلوی سطرها حائل و فریاد کشید رفقا به شیر توجهی نکنید بعداً ترتیب آن داده می شود مهم جمعوری محصول است رفیق سنوبال جردار خواهد بود من هم برای چند دقیقه خواهم رسید رفقا به پیش یونجه در انتظار است به این ترتیب حیوانات دست جمعی برای برداشت محصول به زار رفتند و چون شب برگشتند متوجه شدند چیری در بساط نیست